سخنرانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه جلسه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و نبینا محمد والاولاء الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارض اللهم ان السلام و السلام ولك السلام و اليك السلام, السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون و على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام علیک ایوها النبی و الله و السلام علی الأئمة الحادین المهدیین السلام علی جميع انبیاء الله و وملائكته و اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحين. السلام علی, علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت شهیده السلام علی الحسن و العساین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن الیباظر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر القاضم. السلام علی ابن علي موسر رضا. السلام على محمد ابن علي الجباد السلام على ابن محمد الحادي السلام على حسن ابن علي الذكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن الغائم المحمدي عليك يا عبد الله وعلى على التي حلت في عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت و الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين, وعلى اصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام انما خرجت لطلب الاسلام في عمه جدي، ان أن بالمعروف و عن ان المنكر و سيرة سیرت جدي و أبي. بعد فهمدم که اصلاح بعد از افساد معنا پیدا می همان گونه که معالجه بدن. بعد از بیماری و عدم صحت یک بدن همان گونه که بدن یک فرد ممکن است دچار بیماری و فساد جسمانی شود انسان عاقل قطعا در چنین شرایطی تکلیف دارد اول متوجه بیماری خود شود بداند و بفهمد که بیمار است یعنی از اون بدن سالم چه توقع و انتظاری می داشت در صورت بیماری و عدم صحت اون آثار و اون توقع را از بدن بیمار نمی تواند داشته باشد مثال اگر یک انسان سالم از مقداری را رفتن خسته نمی شود از مقداری سخن گفتن فرسوده نمی گردد، توان بحث و مناظره و حرکت و فکر و کار و فعالیت را دارد این لازمه یک بدن سالم است ولی اگر دید کمی صحبت می کند، از حال می روید. اندکی راه می توانش تمام می شود. به بحث و مناظری حال حوصله گوش کردن یا فکر کردن را ندارد سلمان این انسان باید متوجه شود یک نارتایی یک عدم تعادل در دنیای جسم و بدنش پیدا شده است از اهل فن بخواهد که نحوه معالجه و برگشت به صحتش را به او بیاموزد اگر بیمار باشد و نداند که بیمار است قطعا در صدد مؤ... مالیچه خود بر نمیآید و اگر بداند بیمار است راه معالجه را نداند و از افرادی که برای معالجه او می میتوانند مؤثر باشند کمک نگیرد مسلما بیمار باقی میماند یک امت، یک ملت، یک جامعه، یک مکتب هم میتواند سالم و بیمار باشد. انتظاری که از یک مکتب سالم داریم، انتظاری که از یک جامعه سالم داریم، با آنچه که در یک مکتب و جامعه بیمار مشاهده میشود، اغلا و, و اندیشمندان را به فکر فرو میبرد که چه شده است که در این جامعه یا در این مکتب یا در این امت اون انتظاری را که ما داشتیم اون توقعاتی که برای ما وجود داشت مشاهده نمیشود بحث در امت و مکتب اسلام و قرآن است آیا خود قرآن کریم ادعانه کرده است؟ من کتابیم کامل تری و تمت کلمت و رد بکر و عدلام لا مبدل لکلماته آیا پیغمبر و اعمه حدا علیهم السلام مدهی نبودن که بهترین و عالیترین طریقه تکامل فردی و اجتماعی شما انسانه ها در گروب تز و اون مرام و مکتب و است که ما ارائه می دهیم ولی ما وقتی به جامعه اسلامی نگاه میکنیم از بعد از رهلت پیغمبر تا زمان ناهازا اون توقعی را که از قرآن و مکتب اسلام داشتیم به صورت جمعی اجتماعی مشاهده نکردیم چه ظلم ها چه جنایت ها چه تعدیه چه تداود ها و چه بی ها در طول تاریخ بنی امیه بنالعباب به نام اسلام به نام قرآن به وجود نیامد که تا حدی که هر انسان بی غرضی اگر بخواهد به تاریخ اسلام مراجعه کند Okay. منعای بحث تشیع و مسئله علی و آل علی که خود آنها از همون افتدای بعد از پیغمبر در مقابل این خط و جریان ایستادن و جان دادن و زندانی شدن و مشکلات بسیاری رو تحمل کردن و خانه نشین شدن منعای اون بود اگر انسان تحت نداشته باشد اسلام منعای اهل البیت و مرام احل الویتی چه مزیدی نسبت و ادیان گذشته داشت اگر احیانم قبل از اسلام یه تحریفاتی در تورات و انجیل پیدا شده بود اگر قبل از اسلام علمای یهود و نصارا حقائد تورات و انجیل رو لوس کرده بودند و مطالب رو به شکل دیگری به خرد مردم می دادن خرافه ها جای حقیقت رو گرفته بود مگر بعد از اسلام منهای مکتب اهلالبیت علیه مسلم چه خرافه ها و اشتباهات و اوامل گوناگون غیر انسانی به نام اسلام به مردم تحمیل نشد پس چه تا بلکه چه دو دیوان چرا قاید بزیده تر برد کالا؟ یا باید بگوییم اسلام ناقص است قرآن کتاب کاملی نیست و ادعای پیغمبر و ائمه نعوذ بالله دروغ است یا باید بگوییم بیماری وارد شده هست. میکروبی بر پیکره اسلام نشسته است این بیماری چیست و این میکروب ها کدام است و راه زدودنش چیست همون مثال جسم و بدن انسان رو که عرض کردید اگر یک کودکی که به دنیا آمد نمیشنود یا نمیبیند یا شیر مادر را نمیخورد آیا باید بگوییم نظام طبیعی خلقتی است که اگر یک انسان به دنیا آمد نباید ببیند نباید بشنود و نباید غذا بخورد و نباید رشد کند خیر توقع ما از یک پیکره سالم از یک بدن سالم این است که اونچه لازمه بدن سالم است دیدن و شنیدن و حرکت کردن به اقتضای سنین مختلف و غذا خوردن و برخی دیگر از اقتضائات یک جسم سالم را داشته باشد به همین جهت همه عقلا و علمای آدم اگر دیدن یک کودک یک روز یک سال یک فرد 20 ساله پنجاه ساله 20 در یا کمتر این نارسایی ها را دارد میگوین مشکلی از نظر جسمی پیدا کرده است ما آدم پرتوعی نیستیم که میگوییم این باید ببیند پس چرا نمی بیند ما از مکتب خدا توکل داریم این توکل جان که بتواند جامعه را سعادتمند کند بتواند انسان ها را به کمار برساند بتواند بشریت و ارزشهای والای انسانی رو در زندگی فردی و اجتماعی انسانها ایجاد کند اگر نباشد مکتب خدا نیست مکاتب بشری است که به جهت کمبوده ها نارسایی ها و دخالت امیال و هواهای نفسانی قدرت ایجاد جامعه ایدعال را ندارد و به همین جهت ده سال پنجاه سال شب سال صد سال دو غرم سه غرم بیشتر کمتر گاهی یک مکتب ارز میکند می کند را هم به خود مشغول می شادد. مثلا مثل نظام مارسیستی در قرن اخیر هفتان سال جوامع را اونی به خود مشغول می دارد ها می بخشد مدینه فاضله می شادیم. نظام اجتماعی ایدعا رو به شما تحویل می دهیم. ولی بعد از نیم غر یا هفتاد سال نه اشتباه کردیم راهی که ما رفتیم غلط بود بر می تجربه می کنیم. راه دیگری را آیا مکتب خدا هم باید این گونه باشد یا مکتب خدا نیست یا اگر مکتب خدا نباید این گونه باشد لذا همان گونه که یک بدن بیم شرایط بدن سالم را ندارد یک مکتب هم بیمار می شود و شرایط یک مکتب سالم را نخواهد داشت این که امام حسین علیه السلام فرمودن خرجتل طلب الاسلام فی امت جدی اشاره به همین مطلب است که امت جدمن من بیمار شده مکتب جد من برو آفات حجوم آورده از آن شرایط یک مکتب سالم بودند در است ولی خدایی که این مکتب را فرستاده نگهبانان و حافظان این مکتب را هم در کنار این مکتب قرار داده است که به نگهداری و حفظ سلامتی این مکتب بپردازند مواردی رو از قرآن سریم خدمتون ارسردم که بر مبنای اون آیات این پیشبینی رو نسبت به همه مکاسب داشتم که دیگر تکرار نمی‌کنم. روایاتی رو دیروز از منابع اهل سنت خوندم از صحیح مسلم و بخاری و احمد و غیره که سیغنبر می بعد از من امت من چه خواهند شد و چه به سرشون خواهد آمد یک روایتی رو حیفم میاد این رو هم اشاره نکنم ابن عبدالحمید معتزلی سنی مذهب معتزلی مذهب غیر شیعه در جلد چهار شرحی که بر نهج البلاغه نوشته صفحه 107 فراس در بین حمایینی که خود از علمای معروف اهل سنت است و کتاب بسیار عزین است جلد یک صفحه 152 از انت ابن مالک نغل می کند که انت گفت پیغمبر با علی و ابن عباد بیرون مدینه در مزرعه و باغ اطراف مدینه عبور می شردن. امیر نگاهی به این درختان و نخلهای اطراف مدینه انداخت به پیغمبر عبد کرد یا رسول الله مناظر اطراف مدینه زیباست این جمله را تا امیر المؤمنین پرمودن انت مالک نقل کند که ابن عباس برای ما گفت سوزه رأسهو على رأس علی و بکا پیغمبر پاد علی شنید که علی می‌فرماید این درختان نخل و این مزرعه اطراف مدینه چه زیبا سرش رو چتمون به سر علی مثل اینکه آدم صورتها رو به هم می که هم دیگر رو به بوسه سرها رو به هم نزدیک میکنه یعنی علی رو در آغوش گرفت سرش آورد جلو و شروع کرد گریه کرده خب خود این یک سواله مگر علی چه فرموده که پیغمبر گریه می کنه مسلمن اشاره به یک غذایه دارد در ادامه روایت خودش مشخص می کنه فقال علیون ما کی که یا رسول الله ای پیغمبر خدا چیما استگیری شما شد چه شما را به این تأثر در آورد قال رسول الله پیغمبر فرمودند زقائنون فی صدور قوم لا یبدون حال و که حتی یفقدونی چینه مردم حسادت‌ها و ادابت های قومی که در دلها اینا رو نگه داشتن و منتظرن من از میانشون بروم تا این کینه ها را سر تو و آل تو خالی کنن ابن عدید می نویسه فرایت و سبتین همه می نویشه و بسیاری از کتب دیگر کانا به مرورد که تیکهات انشالله این روزا حرف کرد یعنی دست که بلایت کار خود کرده خدا برای اتمام و حجت هیچ ای باقی نگذاشته شما یک دانه کتاب شیعه رو هم به حساب نیارید فقط و فقط از کتب دست به اول احل سنت اگر به همین مسئله که بنده ارزو کنم نگاه کنید که از دید پیغمبر و پیشگویی های پیغمبر یک قومی بودن مردمی بودن تینه توز بودن حسود بودن منافق بودن منتظر فرصت بودن تا پیغمبر از میانشون برود اسلام رو لوس کنن حقائق قرآن رو تعریف کنن دین رو به شکل دیگه در بیارن کاملا کتب علی سنت قابل اثماته خدا خواسته باقی بمانه تا امروز من و شما به برای اثبات حقیقت مکتب که بیماری مکتب چیست حد شیست از لاولای همون کتابم در بیاریم خب این برای یک انسان محفظ سواله یا رسول الله این رقائن این این هایی که در دل امتی ارتباطش با باق و اطراف مدینه چیه شما وقتی تاریخ رو میخونی دیگه الان برای تو میشه امیر المؤمنین علیه السلام از پیغمبر 25 سال توی این نفرستانه های اطراف مدینه مشغول کشاورزی میشه یعنی هنگامی که مشغول کشاورزی هست علی از این که کشاورزی کنه نراحت نیست علی از این که مشکول امران و آبادی خاک باشه براش مسئله ای نیست اما چه دردی از این بالاتر که معلم بشریت را در در ترین دوران تعلیم بشر از کلاف بشریت بیرون کنن و به کار به جای پرورش انسان به پرورش گیاه مشغول دارن یعنی تا علی میگوید این مناظر اطراف مدینه چه زیبا پیغمبر به گریه میفته یعنی بجای اینکه چهرههای انسانی زیبا در مدینه بدرخشد و نخل وجود سلمانها و ابوذرها از مدینه با تربیت توی علی سر بکشد توی علی رو مشغول همین کارا خواهند کرد این گرگه داره و این رنج داره. نژاد مستشرق مثل توماس کارلایل که مسلمانم نیست وقتی راجع به تاریخ اسلام طعنه می کنه میگوید افسوس زمانی که علی بن ابی فرمود سلونی قبل ان دونی به جای آنکه قلم به دست علی بدهند، میل به دست علی دادند. به جای آنکه قلم به دست علی بدهند دیر به دسته علی داده یعنی وقتی ندانن چه انسانی رو کجا باید قرار بدن شما الان در نظام این ساختمان دقت کنید اگر پنجره را به جای مکان لازمش رو سقف این حسینیه گذاشتید در رو به جای جایگاه لازم برای ورود مثلا به سمت حیات خلوت فقط باب کردید این ساختمان بیه سابه چیزی سرجاش نیست؟ پنجره پشت باام به معنای پنجره واقعی این ساختمان به درد شما میخوره ندر که به اون سو گرفتن بلکه باید هر کدام رو در جای خودش قرار بدن نظم معنات هم این میشه که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره اگر یک مجموعه داشته باشیم هر جزئی از اجزاء این مجموعه سر جای خودش قرار گرفت که هدفی رو تأمین کنه این مجموعه این مثلا یک خانواده رو در نظر بگیرید من راجبی ساختمان گفتم پنجره جای خودش در جای خودش حالا در یک خانواده پدر جای خود مادر جای خود پرزن جای خود اگر مدیریت پدر مورد قبول اعضای خانواده نشد اون جایی که پدر باید باشه نیست اگر شخصیت مادر در خانواده حس نشد اون جایی که باید باشه نیست اگر بچه به خودش حق بده فرمانده پدر مادر باشه جای خودش نیست این خانواده نظام صحیح خودش رو نداره زندگی می پاشه هر جمر که سلام الله علیها در خطبه فدک وقتی آمدن در مسجد و درخواست کنن چرا فدک مرا مصادره کردی چه ارتباطی این موضوع با اون حرف دارد و تاعتنا امان من الفرغه و امامتنا نظام للمله خطبه فدک و اینتون قبلش مقدر عطب او هست و طاعتنا امانم من الفرغه من الفرغه اگر بخواید در این جامعه تفرغه ایجاب نشود اگر میخواییم یک مجموعه به هم تیوته داشته باشید باید بطیع ما خانواده بشید و امامتنا لل للمله اگر میخوایید ملت اسلام نظام داشته باشید جزئی در جای خودش قرار بگیره حساب و کتابی آیا جامعه ای که ی یکی در رأسش قرار نگیره بلا تشبیه مثل یک خانواده ای که یک دیوونه جانی دائم الخم رو رئیس خانواده قرار بدید این خانواده محکومه به فنا هست یا نیست چه نظامی دارید این خانواده حالا این در حد zarar یک خانواده است در حد zarar یک جامعه در حد زرر یک مکتر یکی از بزرگان یسرب ولایت که می جمعی به دیر حمایت به انگام نظر روان وقت مردن همی خواست او از یکا یک رضایت تمام قبیله رضا گشته از وی رضایت گرفت او به حد کفایت به ناگاه یاد آمدش اشتری را که مرکوب وی بوده است از, از بدایت به فرمود حاضر نمودند قشتر کشیدش به سر دست لطف و عنایت به دو گفت که اشتر سان خورده نمود به من سالها پس تو خدمت رضا باش از من در این وقت آخر تو بگ تقصیر تفسیر من با رضایت زبان شطور باز شد بهر پاسخ ز خدا گفت این نغز آیت رضا باشم از حق کردی تو با من که بودی مرا سالها صاحبی با درایت ولی نیستم راضی از یک گناه که بود آن گناه بر من جنایت تو می افسار من بر دم خرد که را را نمایت به من خر هدایت شطور می زیر هر بار سنگین ولی سخت باشد بر او این جنایت که افتار او را تشاند اولاقی رود زیر بار خر بیلی آفر. یه واقعیتی ایست اگر بنابشه رئیس یک خانوادی یک بیوانه باشه جامعه اسلامی رو به جایی بکیشونیم که به خط یعزید بگه من خلیفه مصمینم این مقدار جنایت رو ما تو آهین مسیح هم نداشتیم ما تو آهین موسا هم شاید به این شدت نداشتیم در مقابل چون خودشایی نیم یادید بیاد ادعا کنه من میخوام به کجا ببرم و امامت شنو نظاما للمله لذا پیغمبر وقتی علی رو در بغل میگیره تو مزرعه اطراف مدینه عشق میریزد و میگوید علی جان اون کینه که در دلها جمع شده است و منتظرم من از میان شما بروم تا این کینه ها رو بر شما آشکار سازد یک مطلب هم در این زمینه از این کتاب مسند احمد همبرد جلد سه که دیروز از قسمتی از جای دیگرش خوندم امروز یه مطلب دیگر رو از صفحه 33 همین جلد سوم این مسند میخونم نقل میکنم ان ابی سعید قال قال هم. رسول الله صلی الله علیه و سلم این نقلی که اینجا نوشترد کردم من میخونم که داره صلی الله علیه و صلی اللہ این نداره این نمینکم همانا از شما ها من کسی که یقاطلو علی تعویلی کما قاطب تو علا این نکتر و تقاضا دارم به این انایتی بفرمایی من در رابطه با مشکلات اثر ما در تحویل دین بحث در روزهای بعدی اگر خدا خواهد کاهم داشت که به این پیشگوی پیغمبر عجیب مربوط میشه مثلا گلمان نمونه الان یک بحثی در جامعه ما رواد دارد هم روزنامه ها و مجلات و جرائد زیاد دامن میزند که من وجود دارم و هم های بسیاری در این زمینه نوشته می شود که اسلام دین گریه نیست اسلام دین شادی است اسلام دین پایکوبی و هیچ اشکالی هم رقص و شادمانی حتی مرد و زن مختلف ندارد سفویه آمدند مسئله آشورا را بهانه کردند شماها رو امت گریهای بارآوردند انشاءالله در این زمین دقیق بحث خواهم کرد اگر قرآن بگوید مؤمن باید گریه کند اگر پیغمبر بگوید مؤمن که پیز که باید در دل شب عشق بریزد. اگر پیغمبر بگوید مؤمن نیست کسی که بیاد یاد حسین میافتد اگر چه گریست نمیگیرد، تباحی نکند. آیا اگر ما این گونه بخواهیم با دین برخورد کنیم، ارزشهایی را که قرن‌ها از قرآن و روایت زحمت کشیده شده تا جامعه عامل شوند، از مردم گرفتن نیست؟ آیا حضرت زینب شبویه به چون همه گریه میکرد؟ آیا امام سجاد که بعد از واقعه کربلا لبخند لبانش نقش نمی برد و مرثیه ای ریخت قبل از بود یا بعد از آیا امام باقری که وصیت می کنند بعد از من نایب بگیری به نیابت از طرف من در در صحرای منا برای جدم حسین گریه کند صفویه بود؟ آیا ابن ابی جعفر که نغ می کند روز محرم بود؟ و به اول ماه محرم آخر زیحجه وارد شدم بر امام صادق دیدم حضرت قمگین یه این نشسته آزرده و همینجور دارن عطم میریزن حالشون منقلبه پرسیدم یبن رسول الله خدا کن بشن چیه فرمود حلال محرم رو دیدم ابن عویه فرشیه ما نیست مگر اینکه ماه محرم که می شود او شادی و سرور داشته باشه بلکه هر کس بیاد مظلومیت جد بیفته. باید اشتباهی زشت. چرا یا مطالعه نمی کنید، حرف یا اگر مطالعه دارید، میخواید ارزش ها را بگیرید. نه، من نمیگم چرا. دشمن دانا باید این کار را بکند. دوست نادان هم باید این قضا ماند بزند. ولی دوست آزاد باید بیدار باشه. دوست بحث کنه، مطالعه کنی، بنویسی، بخوانی، جنایات عبی عبدالله رو هر چه سنگین تر بالا بگیرید. ما علی این جریانات شده دشمنان مکتب تشیه بیش از همیشه می کنیم و بیش از همیشه می زنیم و بیش از همیشه فریاد می زنیم و فریاد می زنیم یا عبا عبدالله الحسین تو فریاف آوردی مکتب جد مرا می خواهن از ارزش های واقعیش بیاندازن های کامادت حلم ناصر ینسرونی کودت <تصفيق> ششما هم تو <تصفيق> گهواره دیکن ما به طبع اون کدکت تو، میخوام یکی از اون کتوره تو مکتب شما یه بزنیم این قضیه و خیلی روش کار دارم ولی اجازه بدید مثلت چیه درمید آقا محبا صفحه سی این منکم دقیقنبر فرمودن از شما من است که یوقاتلو علاط حذیلی که ما قاتل تو تنزیله همون گونه که من برای تنزیلش مقاتل کردم یعنی چی؟ مقاتله در تنزیل با مقاتله در تأذیل فردشیم برای که روشن بشه اجازه بدید من یک رجعی رو از جنابه اممار یافر جانم فضای خاک پاش اینا مرد بودن اینا عدم بودن اینا چیه و مسلمان بودن اینا امام شراب و صدردان دین بودن به تعیید خود مولا وقتی اومدن تو جنگ سفین بعدی گفتن آقا جون اممارم شهید شد آقا فرمود بریم کنار بدن اممار چه امماری؟ نزدیک 90 سال برای اسلام جان بازی کرد. و اجرج و اجرج خون دلها خورده خورده خورده حالا یک تیر مردی است خون دلها هم خورده در تمام این مدت حالا تو جنگ بجنگ شمشیر شمشیرم خورده افتاده زمین داره جون میده نقل یکی از یاران میگه دیدم عمار داره سینه‌خیز میره جلو گفتم عمار چه می‌کنی؟ قم اونی که اونجا افتاده دشمن علیه من دیگه نیرو ندارم از دشمن علی استفاد کنم از علی و دشمن علی رو برانم واقعا میتونم خودمو رو بیندازم رو سینه دشمن علی رو سینه دشمن علی جان بدم دارم این مقدار جلو میدم علی فرمود منو ببری کنار بدن اممار وقتی اومد کنار بدن اممار داره اونقدر گریه که از رویش های آقا خیش شد بعد فرمود اینه اممار اینه از شهادتین اینه ازن تیهان عین اشوانی ازدین من تو علال حبی نه اینه اخوانی اینه مزو کجا شدن اون برادران به من که در مسیر حق پیش رفتن یعنی مثل و رفتن جلو و واسدادن اینه امار تو جنگ سفتین اون برماویه او آنها رو بالای نجزه کردن اون قضای که میدونید این برم علی و یاران علی هست داره می جنگه در جنگ ها می میخوندن که شعاریش و مکتب خودشون رو نشون میده دیدن امار بلند بلند داره این رجز رو میخونه کتاب الاسفیام که یکی از کتب معروف اهل سنت او نقل میکنه نحنو ضربناکم علا تنزیلی ولیون کم علا تعدیلی بزنید اون از کتاب الاسبی آقا از نوشته های معروف برد سنته من از که از روز اول منابع را گرد سنت خدمتون میگه نحن و ما ضربناک و به شما ضربه زدیم با شما جنگیدیم با کی؟ یعنی با معاویه و داردستان الان تنزیلی وقتی که قرآن میخواست نازل بشه یعنی وقتی وحی داشت نمی‌اومد پیغمبر میگفت من پیغمبرم شما در مقابلش ایستاده بودید نمی‌زدید توی ماویه بودید بابا ابو سفیان بود و خاندان شما بودند شما در مقابل پیغمبر ایستادی و من عمار با پیغمبر تو جنگ برد تو جنگ احد تو جنگ خنده‌ی خندق و و بودیم با شما می‌جنگیدیم چرا شما رو کنار بذارید بذاری بختیار بذاری کتاب خدایی ها تو این آدم بذاری تیغمبر هستی شما مردم بزنه یوم امروز هم نظرت بکن الان تحویرهی وقتی بنات قرآن تفسیر بشه پذیل بشه توضیح داده بشه به مردم معرفی بشه شناسنده بشه که دین واقعی آیا میشه چند جور غراعت بشه و همشم درست باشه یا دین واقعی حق یه جور هسته چه پیغمبر فرمود یا علی اگر همه امت یک طرف راه های مختلف رفتن پیغمبر به ابوذر و سلمان فرمود یک راه را علی رفت بدان اون راه حله خب هزاران راه دیگر هم ممکن است بشه تعلیل دین یعنی من بگم منظور آگه اینه شما بفرمایید اینه آقا بفرمایید اینه دیگری بگه اینه بگم اد نداره هرچی چی که چی میگه همونو بگیری یکی بگه منظور اویینه نماز خوندید بخون نخوندید هم نخوند بس است یکی بگه منظور که این اگه نماز نخوندید یا میره اونم درست هست. یکی بگه منظور آیه این هست علی حق هست درسته یکی بگه منظور آیه اینه علی فرض نمی کنم مهابیان فرض نمیگن اینو هم مدرک میخونم براتون تو همین اصل ما اسلام شناسی به خود جوانان ما داده میشود علی یوم نضرت کم علا امروز توی معاویه میگی دین اینه علی میگه دین اینه و ما داریم به امر خدا به دفاع از علی با توی معاویه میگنگیم نه دین اون نیست که تو میگه دین اینه که علی میگه علی یوم نضرت کم علا تعویلهی اینو اونجا میگه یعنی تو داری دینو یکه بر میگ سیر با ترجمه فردش رو اشاره بکنم ما یه ترجمه کتاب خدا داریم بسم الله الرحمن الرحیم میگید به نام خداوند بخشنده محرومان خب از زبان فارسی عربی برگرد بگید این ترجمه است. یا به نام خدا رو بگید دن ایمان گاد مثلا خب از بید به زبان انگلیسی. به اینو ترجمه هست. یه جمعان میخوایی تفسیر کنید میگید منظور بسم الله به نام الله که به الله گفته منظور چیه این مقداری که می‌فهمیم مر... شروع می‌کنیم توضیح دادن ممکنه یه وقت شما ده ساعت با بسم الله صحبت کنید یه وقت وقتم ابن عباس میگه فی لیله تن موقع مره در یک شب محتابی علی دست منو گرفت فرمود بریم بیرون مدینه رفتیم بیرون مدینه پشت بقی علی فرمود که اقرا قرآن بخون ابن عباس ابن عباس میگه شروع کردم بسم الله خوان رفن... ابن عباس با... با... دادم فرمود بسم الله بنویس شروع کرد به تفسیر نزدیک که از آن صبح بود فرمود که دیگه بسته اگه بخوام ادامه بدم بارش بار شطر می شود یه وقت علی به رو تفسیر میکنه یه وقت فرض کنید که یک عالم برگسته غیر معصوم تفسیر میکنه یه وقت میگم دنگر... یه انسان کم اطلاعی مثل بنده برای هر یه چیزی از این آیمی میفهمیم بیان میکنیم تعلیل از کلمه طب ترجمه برگردوندن زبان به زبان تفسیر پرده برداشتن شکافتن مطلب رو یه مقدار مثلا وقتی یک فقیه میاد این آیه رو الله علی الناس حج بیت من استطاع الیه حج در واقع تفسیر فقهی داره میکنه میگه منظور آیه اینه استطاعت اینه اگه با شباد این کارو بکنی حج البيت یعنی این تفسیر اثر میشکافه کافه تفسیر تفسیر فقهی میکنه تعویر چیه اوله یعنی برگردوندن به یه معنی دیگر ما تعویر به جا داریم بله تعویر به جا داریم تحویل نابجا داریم بله مثل تفسیر به جا و تفسیر نابجا مثلا در این آیه شریفه و بخیه هایی که در طول اسلام برای ما شروع کردن مثلا در این آیه شریفه اینه باید تحویل کنیم ما بگیم که خدا یه کرسی اون بالا داره رفته رو کرسی نشسته این که غلط نیست اینو بر به یه معنی دیگه یعنی خداوند در همه آدم مسلط یاد الله خو غیدیه. اگه تعبیر نکنیم ترجمه کنیم ید الله دست خدا فوق چیزیه یه دستایی هست اومده روی این دستا قرار گرفته خب نذوجه بذمه خدا دست داره ید الله فوق این گیه دست خدا بالاتر از همه دستا قدرت خدا ما فوق همه قدرت ها این تعبیر داره چون ملخ داره حالا ملخ نداشت من برای خودم بیام تحویل کنم مثلا این کارو کردن کتابم هم الف لام میم زال کتاب لاری بس فی هدل المنتبین الذين يؤمنون بالغیب یه ایمان به غیر یعنی مبارزات چریکی زیرزمینی ایمان آسکارا شهود یعنی مبارزه مسلحانه آسکارا آقا برچه هست؟ تجا میگید کی گفته؟ چه دل... دلیلی برای این دارید؟ دلیل عقلیتون، دلیل نقلیتون بازار تحضیل که شروع شد شروع کردن که انشانده در سور تاریخ نشون میدم چه تحضیلاتی رو از بعد از رهلت پیغمبر شروع کردن بر مبنای دشمنی ها لذا پیغمبر فرمودن همون طوری که من مقاطله کردم تا و این نازل شود من منكم من يغاب سلو على تعويله كما قاتل تو انا على تنزيله همونطوری که من برای تنزیل دین مقامله کردم بعد از من کسی از شما هست تاش به جمعیتی که نشسته بودن خطاب میکرد بعد از من کسی از شما هست که برای تنزیل دین مقامله میکند پس معلوم برای تحویل دین پس معلومه تغییرهای غلط هم مناسب بشه پس معلومه دین و باید یه جورای دیگه هم در بیارن و کسی هم باید در و فریاد بزنه لذات این جمله رو فرمودن فرصت طلبوعی که به نوین مختلف هی گردنشون می کشیدن ببینه یه فضیلت پیغمبر برای اینا نرف میکنه یا نه فقام ابو و عمر فوری ابو بکر و عمر بلند شدن ایستادن ببینن پیغمبر میگه بله اینان یا نه فقال لا لا لا مصطفی احمد داره میگه آه. نه نه شما نه و لاتن خاصف و و علیون یخصف و نهل علیون گوشنش از او کفششو وصله میکرد تقیقا بس همون شما نه اونی که داره کفششو وصله میکنه او را میگم او همه نگاه چی از نن حدید همه در کفشو وصله میکنه همین چی میگه تا اینجا اون حدیث ابن عبد الحدیب همه و در فرایت و سنتین این پیغمبر فرمودن وای از اون کینه که تو دل هاشون جمع شده و گریه کرد این گریه رو پیغمبر خیلی وقتای کرده پیغمبرم هر دفعه‌ای میخوام چی از هی باز خواستم باز از می‌خواستم بخونم باز بردم بخونم ولی نرسیدم فردا می‌خونم این شاء اللهی خواستن اما آدم آتش شودی شما ببینید چه کردن پیغمبر میگه هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردم اینه پیغمبر فرغوده دید خود خب پیغمبر 23 سال مبعوث شده دوران بهثت شونه روز ظاهری آقا انبیا دیگر رو بازیا رو زنده زنده گذاشتن تو درخت با درخت اربعه کرده اینجوری این دیگه انبیاء دیگه رو حضرت نوحا 950 سال آزر یا هزار سال آزرده و و و اون همه اذیت‌ها حضرت و حضرت موسی چیه که پیغمبر میگه هیچ کسی رو اندازه من نیاذوردن چه آزاری از این بالاتر پیغمبر هر صبح و شب با کسی رو ببینه که خودش جیاز زده پیشش مخلصم چاکرتم بعد میخواد سیلی رو بزنه تو صورت دخترش میدونه چون پیغمبر میگه برای محموده ده خد چرنجی از این بالو کدام دختر نه اینکه دختر منه ملکه عالم وجوده خود ذابو مبااحت میکنه من یه وقتی دقت رو این آیه کوثر میکردم سوره کوثر میکردم به رفقا گفتم شما یک زمان میگید ان فینا کثر کوثر به درستی که ما به تو کوثر دادیم نه اگه داره عربی ما دقت کنیم در این آیه معنای دقیقش اینه ان اینا گفته یعنی ما این ماییه که میتونیم کوثر به تو بدیم یعنی خدا با زهرا را به پیغمبر دادن داره به پیغمبر میگه اون که میشد به تو بدیم در اون حدی که مای خدا میدیم و ظرف امکان این عالم امکان برای توی پیغمبر گنجایش داره دیگه بیشتر از اون نمیشه در وجود زهرا و لذا پیغمبر میگه هر وقت به بهشت میکنم زهرا را میبویم نه یعنی بهشت به این معنی ظاهری یعنی عالی، چرین در جر... درجه در رزبان و من الله اکبر زال که هوا خوب زال که هوا خوب زال عزیم عالی ترین درجه امکانی تعالی رشدی را که یک موجود می به اونجا برسه از اونجا بالاتر دیگه ممکن نیست هر وقت من پیغمبر هر درجه رو می زهرا را می بویار. اینا در رابطای گفتار خود پیغمبر در و من او وقت پم بر بگوونه کسی که میخواد سیلی سیبیر صورت این زهح را کسی که میخواد به در خانه این <تص> زهرا رو بیاره هر سختسب اون به سلام نقو کنه همه بتر. اون به سلام نم کنه. پیغمبر بر تو به بود حالشون خیلی بد بود. دیگه بالا بدن میشوخ فرمودن که چشمی با کردن فرمودن همین محبوب منو رو گید بیاد آجشه پوری دوید, دوید رفت باباشو خبر کرد اموکت دوید اومد توی اتاق پیامبر پیامن برای کردن اونقدر حاقشون بد بود که خیلی قدرت چشمی کردن او اینا هم نداشتن یه چشمی کردن چشمش رو هفته دوید رفت باباش عمر رو آورد او هم عمرتا پیغمبر چشوشش و بعد اما سلامه گی گفتم چرا پیغمبر رو اذیت میکنید شما نمیدونید محبوب پیغمبر کیه نمیدونید عزیز کی رو دوست داری پیغمبر کی دوستداری دوست داری کی رو میخوا من دویدم رفتم در خانه علی، آبا جمع پیغمبر شما رو نخواه عیدی دویل اومد همین که پیغمبر چه شبو کردید علیه لبخندی زن فرمود الیه یا حبیبیه لگی حبیبم بیا حبیبم بیا الیه نزدیکتر میگه ای پیغمبر میفرمود الیه یا حبیبی علی هم نزديكر میشد یه وقتی دام زانوهای علی شبید به بستر پیغمبر پیغمبر فرمود خوشتو بیار گلو گوش آورد آورد همین جوری که پیغمبر تو بستر بود خوابید رو زمین گوشا دهن ده پیغمبر پیغمبر فرمود همه از مصاف بیرون ما همه بیرون ما پشت در بودیم پیغمبر خیلی با علی صحبت میکرده ما نمیشنیدیم چون در گوش پیغمبر گوش علی کسبیده به دهان پیغمبر تو به سر نزدیکم اما گاگا صدای گریه علی به چشمی اومد صدایی نالهه دوبارم علی نعرزه دوبارم با صدای گریهت خیلی بلند شد وقتی که علی از جدا شد از پیغمبر اومد بعدا من به علی از آقا جون میتونم یه از شما بکنم هم سلام میگه آقا فرمودن به گفت اون روز چی بود پیغمبر میگم شما گریه می‌کردید گفت پیغمبر یکی یکی وقایع بعد از رحلتش برام بگو علی جون آماده باش چیکار کنم گفت اونجایی که نهر چی بود اون حمله بعضی از زهرا رو به دمیان رسول الله اینجا صبر کنم هموند بره هر با صبر کن. اینجا با صبر کنم سیزا کرارن کتاب ها پر از این مطالبی است. بنافتین تحضیل شود بنافتین لود شود بنافتین به شکلهای ما حالا همینجا تو حالی که اومدید من برسه حضرت زهراب هست رو میزارم فردا اینشالله نه دول بلا و خطبه رو که باید اونا چی گفتن اینو فردا بخونم وقت اجازه نمیده اما صحبت از سیری زدن شد حضرت رو اقایم گفتم اینجا برم در خانه حضرت رو سلام سلامو دارم اولین سفری که به شام مشرف شدم همین که از پلاه هواپیما رفتن بیان پایی. هم شروع کردن دیدن. حال منقلب شد. خالص چه دور منو باقی همراها که بودن تو شبد صورتگاه تو کنترل کن به لحنتی رو کنترل کردم تا وارد سالونی که شدیم یکی از دوستان روحانی ما تو سوریه اومده بود تو فرودگاه. تایشون تا رو دیدم شروع کرد کلی کردن. گفتم چی گف یه خاصی یه چیزی برات این روزات سوریه اتفاق افتاده. گفتم چی؟ گفت هفته در یک پیرزن نابینای ایرانی اینجا تو زائرین یه هفتهی سوریه بود همه کسفیده بود به ذریع حضرت روغیه که تا چشمه ندی ایران نمیرم <تصفيق> یه گذشته روز آخری بود این کاروان میخواست بره. پیرزن چسبیده بود به این ذری گفت تا چشمه و ناله نمی‌رم. برای که من باور کردم اینا این قدرت رو دارن. هر چه را بیاستون ناله زدن. آخری صاحب مسئولین مثلا زیارت رو اینها گفتن آکاش نداشته باشید. باشین. یه هفته بمونه مافقه بعد آرامش میکنیم گفت دخترش و پسرش و اینا همراه بودن، اومدن هتل، مادر و تیه حرم حضرت رقیه راهال شاید تنهایی وادارش کنه یه وقت از تو یه حرم پریاد دادنیم پیر بینا شده راضیه که ما خودمون شاهد بودیم و بیان شد. اما یه خاطره دیگه رو من در ایران نقل می‌کنم این قضیه بشم. یه سال اتفاق افتاد در زندگی خودم یه 5 ماهی ماهي حبسمای موفق نشدم مشهد برم. میرسی. خیلی دلمم گرفته بود و شکسته که چرا توفیق زیارت حضرت از من سلب شد تا بالاخره با یه فرصت کوچا جور شد از فرودگاه صاف رفتم تو حرم گفتم ارادت عرض می‌کنم. عرض تا وارد شبستانی شدم که درهای حرمه توی اون شبستانها سر ها نماز جماعت داشت تشکیل میشد نزدیک فوری در حرم وبخسر من خوشت تو در نشستم خیلی دلم گرفت گفتم آقا جون صداستون بشه حتک با احترام ندادی بیا حالا تا رسیدم در رو به روم بست نمیدونم چه کار کرده این نماز برپا من گفتم خب حالا نماز میخونم بعد وارد میشم نماز مداره برکات اول و دوم دیدم یک صدای ناله یک دختر خرد اون قدردر جان شود اون کننده که خدا میدونه من نماز مغربم تموم شد شک کردم این همه تعثر که برای من ایجاد کرد و حالا من شد این نمازم درسته یا نماز که تموم شد معون شد که یک آقای از دهات آذربایی جان دختر خانم شعبده بوده یه آقای دمه در حرم گفته من برم ذری رو ببوسم برگردم در این فاصله در حرم و بستر این دختر پیشهای میکنه و به که داخله. اافادیم تورکی بلد بودن. Hey, هی این دختر نمازش میکردن یکی کی بیستو بیست داد، یکی شوکولات داد دیدم. یکی به ترکی پیش که الان درواز میشه، باباش میاد. من نماز اشا رو نتونم شب بخونم، شب کردم. ببینم وقتی باباش از تو برمی‌جاده، دختر چه به دهنسی که نماز شاد تموم شد. در ارم باز شد، دیدم پدر اون بر پشت در منتظر بوده. این دختر خود خداق تو باخل پدرهاش شروع کرد چه کار کرد. گفت: منو بیار. دمه یم از رومت رو گیجه بشن اونجایی که الامان و گل ونجایی که علامان و خلوی نقلیام دیگه نقلیم چه جوری نق کردن این مامورین سرها رو به لیزه می‌دادن دستور داد بیارید به بی این دیوار خرابه همین جایی که علامده شما رو زیارت می‌کنی این دم بچر تو خرابه نگردشتن این لیزه ها رو به دیوار خرابه تکه می‌دادن اینا چشماشون به سرها بیفته متاثر بشن سر عبی عبدالله رو نمی‌دادن بس دختر بیتابی می خن. دستور دادن این سر رو به نژد بزنید به بین دیوار خرابه تکیه بدید ببینید امشب این اینا چه میکنن و سختا با سختم مواظب سر حسین باشی نگهبان سر علی عبدالله میده یه وقتی داره دختر خورشید با بچه با بچین اومد کنار دیوار خرابه یه نگاه به چشم من میکنه یه نگاهی سر خواب زدن این دختر خیار کنه خوابم چه میکنه وقتی که کرد من خوابم خوابنچین بابنچین اومد جلو این نیجه رو گرفت خوابون روی زمین هر رو از نیجه جدا کرد خر ببند دایی تو خرابه خدا دادم به جان بابا اومده Thank <laughs> you.